C'è l'asce di cielo dopo me la soglia. به این خوبا و در اروه هم دستید داره به این مسئله اختلافیه و حتی اونهای که قاعده به تجویزه احتیاطن برمان راه سوم اونها در اصل مسئله جواز احتیاط قاعده به وجوب اشتهادی یا کردیه برای یک ذیری اجمالی می‌خواد برای که به به که مثلا اینکه که ها در همه اصولی مفیده حسنه." خسنه نه چه. یعنی همون چیزی که عقب داره میگه اونا عوامر افشادی دیگه خیلی در شبه همون همه عقب عقب میگه در شبه ها تلخم چرا؟ خسنه روزونه بعد امر ارشادی ما مولوی داریم میږیم نا اشاد ده حکم عبل احتیاط عملی فتیم هس ده احتیاط عملی در تعبدیات راه ندار بحث ما در تعبدیات احتیاط عبل درش راه ندار هل شبهه از اون جهت نداده و مثل محقق قومی بایده با به نفتی دیگه دیگه ما بالا تر از این به نفتی لذا طریق سوم به شما همون قبول نکنید نکنیم یا اجتهاد باید باشه یا تبلیغ در تمام مسایل شرف رو تبلیغ کنیم احتیاط معنا نداره در که احتیاط میگن باید برگرد باز از ما تبلیغ کنه در همین مسایل تبلیغ کنیم چیزی نمیمونه برای خود ما چیزی نمیمونه. یک بحث سویه که بیاییم بگیم احتیاط بکنه احتیاط فارغ از تبریده اینطور نیست تمام موارد احتیاط هایی که در رساله ها اومده همه منشه ایش تبلیده پس حرف بیرفتی نیست آنهایی که قاعده به نفی احتیاط میشن منوان را عدم جواز رو قاعده تو جوزوها نوشتیم مقتضای قائلین بود که عدم وجود رو بگیر ولی عدم جواز می خواهد دیده امراه رو دیده هم. باید مقتضای قائلین که عدم وجود رو بگیر از جو بشه خواهد دیگه می بومی در کلام مصنف بلعجب ممن يعمل البدع امور من باب ذم الانفضادی المختار ثم يذهب الى عدم جواز الاختيار یعنی عدم صحه عباده تارك تقليد الاشتامات تو ترجمه و این یک فرضیه که نمیهای قمری بدل دیگران بلد میشدن قائل جواز احتیاط میشن ما مقدمات انصداد هم ساختگیه و اگه نیست بیارم بگیم مقدمه ایسه عدم وجود رو میگه و این چرا عدم جواز رو باعد شده ساختگی ساختگیه شده از نظریان مقدمات اساسی نداره و ما اصل انصداد بیاساسه این عدم با یعنی از امامو که معلومه که معلومه که در معالم سقوم که عدم وجود احتیاض عدم وجود احتیاض در صورت نفی جواب هم کرد چون این نفی هم کنه چه اشکالی نداره از معالم عدم وجود نیست پس جایز است پس جواب حجوم رو نفشش کرده, کرده لزوم رو نفشش کرده رو کرده, کرده. اما از جواب, جواب, جواب نه وقتی لزوم رو ورداشته یعنی اصل و ملاکش مونده مقدمه سوم بگه لزوم نداره نه ملاک نداره لزوم نداره چرا لزوم نداره؟ چون دلیلش قاعده یا صحره دیگه اُسلوه خارجی هم میشه لزوم رو برمیداره داره نه ملاک رو پس مداد داره یعنی احتیاط حائز دیگه نه. احتیاط اگر حائز عمل احتیاطی باید صحیح باشه که لزوم نداره نه این منافیه این نیست که آدم جواز رو هم بر مقاومت بشه منافئی این نیست ما میتونیم ببینیم که واجب نیست واجب نیست احتیاط کنم واجب نیست احتیاط خب، یعنی احتیاط کرد چی؟ میتونه هم جواز جالب باشه احتیاط هم ببین که آدم جواز و احتیاط هر دو رو ما بیتونه شاموهی باشه شرط فقط جواز رو شاموهی عدم جواز رو بیتونه شاموهی باشه شاید من نمی نه من میخوام بگم که لزوم رو برداشته ولی میدار چش واقعیه ما نفیه لزوم کردیم نه نفیه ملاک از احتیار ملاکش باقی مختلفه مثل خیلی از مباهات خیلی از مباهات لزوم می نداره الان که لاست دفتن می نداره ملاک داره لزوم نداره ولی ملاک رو داره هرگی ما بایدیم مثلا واجب نیست نماک کسی به خانه یعنی جاهز نماس یا ممکنه به منی عدم جواب و باشه واجب نیست وقتی میگن واجب نیست واجب نیست شما صدر را یعنی یه ده که صدر دیگه در جایی صدر را در جایی مثلا نه نه نه پیچیدش نکنید لزوم نفت شده مداش باقی <تصفح> <تصفح> این اینی لایکو میگن ثبت ملات هست یا توش هم لزوم برداره حالا هر کی چون حالت کلی درسته اگر یه جایی ما بگیم لزوم نداره برداش این ویزا ده با اینکه جوازم ندیشه با هست اما چرا ویزا تو ما بگیم فقط گفتید لزوم نداری حالا انجام بده ویزا ده بگیم خودمون انجامش چرا وجوب دارد داشته، انجام اگر لزوم اور می‌دارن جواز میمون تمام افعال اختیاری جایز هست یا نیست به معنای عام اگه لزومش رو بگیریم جوازش واقعا محتضای برداشتن اختیار مقتضیش این بوده این, محتضیش. محتضیش. محتضیش. محتضیش این بوده حالا این, این در عدم وجود هم سرایان هم سرایان هم سرایان یعنی هرج که چیزی الزامی باشه اگر الزامی نباشه فوز فرع نه اگه چیزی الزامی نباشه چه بسته حرزی شما رو دعوت کنن به جایی بگن خواستی بیا خواستی نیم چه بسته حرزی ولی اگر بگن باید بیای بسته حرزی شاید بشه دو حرزی داشته باشه پس الزام میره ملاکی بمونه که ملاک بمونه عمل بر طبق ملاک صحیح. پس باید عمل محتاط صحیح باشه قائل بدم صحت دوست. نه می خوا... اما بعد از کلاس هم همین میشه میخوام درست بشه گشت بعد از کلاس هم همین باشه یه دفعه به بین مبنای مشهور در صور با فرتاوای فقهی و فرق قابل دفاع نه با همین با با همین ازشون کردن حالا ها با هم وجود که جواز حالا دیگه مشکور قایل بدم هم وجوب با. هم بعضی قایل بدم هم جهاز ویزای قمومی قایل بدم هم وجوبه محضر قایل بودناش خیلی مهم نیز اینا وقت خود مایتیزا نگیه از انصداد چیه که مقدمات چیه باشه سرمومه چی چی چیه وقت ما رو نگیم نداره در اینجا جا الان یکی ایک قایل به انصداد بشه که دیگه اینچی باید وساید شرم بذاری کنار دیگه ایزای قومی قاعده به اینکه به پریدن کلا ما اگه زن پیدا کنه می کنیم فتوار بدیم نمیشه به پریدیم اگه اونطور باشه بیگه چرا شما اصنات رو بردسین می کنی چرا رجال می خونی تو اصول می خونی اصلا نمیشه این حرف رو بزنیم فنابراین هر فرم ایزای نیاز به یه تحقیل داره بله؟ اینا انصدادی است یعنی تمام سنونی که برای شما حاصل میشه شه اون کیه؟ چه از خبر صحیح باشه چه از جریان باشه اینطوری وارد دیگه واقعا میرزایی هم واقعا دیگه انسان هرچه بزرگتر باشه اشتباهات شد ممکنی چیز نسبت که به اونم بگی من نه من در مباحث تبریره نظریه میزد نیستم چه لا قایله به همین نظریه زمین انتقادی و چیه خیلی مهمی این و معلولی و نتیجه هر زنی. هر نه هر ترزن نیست چون به حکومت هم هست حکومت یعنی حکومت به حکیت جمع حکم هم قابل تقسید نیست تمام محال اگه کشفی بود میشه شما مال بزن لذا محقق نا این اومده تعجب کرده از تعجب شیخ خمسانه بسید چرا بگیم میرزای قومی داد اونم میزه منم میدم <تصفيق> ازیح نداره میزه هر دلن اون شده به اینکه از راه این کش وارد شده این حرفای شیخ حضرت و این وصله به میزه قمی بومی میگه اون نگاه کنید میزای ناینی در دفاع از میزه قمی بومی یه حرفای خوبی آورده <تصفيق> اونا رو همه فقها ها میگن بباید زیده میگن بلدن همون باید بلدن <تصفح> <تصفح> شما خیانمون فوقه فقها مشکل ما به همریختگیه به همریختگیه خیلی راحتی جواب هایی میدوندش میشن و اجعای قرآن رو این طوری نفکش ان کنه لا یغنی عن عَلِلْحَقِّ یامن الحق یا وقتی اینطوریه از نظر بلاغی هم حساب بکنی غیر قابل تخصیص به زنی دون زن ناخس تمام زنون این مقام اول که وارد شده حالا بحث با میرزای قومی تمام شد نتیجهنه که نظرش که به واقع که احتیاطرو نفکش کند نا توی داریم دار مطرح میکنی برای ینکه شما به نظریه خودتون برسید ما احتیاط رو قایل میشید یا قائل نمیشید در همین جلسات طلبه میتون نتیجه بگیره آیا احتیاط راه سومی هست یا نیست اگر نیست به اول غروه حاشیه بزنید چون عروه قائل به سه راهه شما بگید نه ما نو به بعضی از شروع عربن مراجعه کنید به شروع تحریف امام مراجعه کنید به شروع منهاج آی حکیم مراجعه کنید در بیارید این مطلب رو واقعیتش اینه که راه سومی در کار نیست احتیاط بنا راه سوم نیست و دیارا مشهور ماسته و آیرامنی احتیاط راه سوم این نسبت به مقام دومی که به خاطر اختصارش قبل از مقام اول بحث کرد اما مقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنسید تکیف و اعتبار که تفصیلی قد عرفته انه کلام فی حکیتهی و اعتباره به معنی حجوب موافقت قطیه و عدم کفایت موافقت احتمالیه راجعونه با مسئله برایت و اشتغال ول هنا هنان بیان و اعتبار ایر سب جمعه اقل مرتبته هی حرمت و مخالفت قطعیه علم اجمالی منجز نسبت دو حجوب محققت قطعیه و حرمت مخالفت این دوتا مسئله، مسئله اول که وجود به قطعی باشه در باب براءت و اشتباه بعد یه حرمت مخالف قطعیه در همین جا بحث میشه یعنی این مجمالی یک علمی داره مرتبط به باب قطع میشه یک اجمال و شکی داره مرتبط به باب رسول امنیه میشه قضا در دو مقام بحث میکنه حرمت مخالف قطعیت، حیث قطعیت و علمیتش و وجود موافقت قطعی و عدمش نسبت به اجمالی که درش هست بنابرای علم اجمالی هم شبیه شک هم شبیه قطع چون شبیه قطع در باب قطع بحث می چون شبیه شک در واقع حصول اولیه بحث میشه. دو حکم حرمت مخالفت قطعی و وجود موافقت قطعی در این دوبار این بحث می شوند دیگر می زدن که اونم مهم نیست اونم خیلی اهمیت نمید اهمیت در اینه که فرق علم تفسیلی با علم اجمالی آیا در اون معلوم شه یا در نفس علم مشکور قاعدم به که در معلوم شه آقازی هر آقایی به بینی که نه در حقیقت علم حقیقت علم اجمالی با حقیقت علم تفصیلی فرق دادن حالا اگر این حتما ما راضی در نمایت بفتگار پیدا کردی این فردی که آغازی عراقی قاعله فردیه که تنها یک ثمره اصولی برش مترتب شده با اینکه میشد برش ثمره فقی هم مترد بشه منتها آغازی عراقی پیش نرفته حرف خوبی زده منطع حرفش ادامه پیدا نکرد. این فرد در نفس علم نهایتش رفت میده به علیت و اختزا و فرق بین نیت اقتضا یک فرق اصولی نه فرق فقهی ولی حالا میخوام ببینم آیا فرق فرقی هم بین اینها هست یا نیست مطالبی که مصنفان اینجا داره وارد میشه این دل علم الاجمالی صورن کثیره اینا بحث های سوریه احسای سوری و تشکیل در مسئله از این حیث خیلی ای اهمیت نداره سمره نداره اقسامش در ذکر کنه اقسامی که هر اسمی با قسم دیگه فرق جوهری نداره منطقه که خیلی پس پیدا بشه بر انواع و اقسام اینا را آورده ذکر کرد اینا فرق جوهری حساب نمیشه بحث اونده که در صفحه 183 نمیشتم و به دست آنلیس بعداً اینه که علم میجمالی با علم تفسیری فرق یا نه آقازی عراقی خوب پیش اومده باید شده بین که به این علم با اون علم فرق داره نه اینکه معلومشون فرق داشته باشه خود ان فرق داره من تا پیش نبوده طلب همینطور عقی میمونه به این سمره فرقی هم برش نشد با اینکه میشه بر این یک سمره فرقی مترفتر کنیم در جلسات قبل یکی از مطالبی که گفتیم و خیلی اهمیت داشت یعنی که علم اجمالی در اصول یعنی در علوم اعتباری از افه از علم تفسیری و علم اجمالی در فلسفه و حکمت اقواه از این ای واقعیتیه این غیر قابل انکار که علم اجمالی در علوم اعتباریه مثل کسول از عفل این زعفش رو شما باید قبول بکنید یا ردش بکنید این یه بغناس حالا خودتون میدونید این از رو قبول بکنید یا قبول نکنید. ولی نیاز به تحقیق داره مجموعی در موصول و در ما اعتباریه از اف از علم حالا این از افیت یعنی چی؟ تفسییرشیه چی؟ ما می این ضف تر از یه نشانه ای میخواد یه عسی میخواد که این ما ببول کنیم دیگه و تا صرف مه وجود مجمالی داره یا نداره؟ یعنی به معنی خب این اصطلاح ولی این داره. بهتره تفسیر بارش نمی‌روشیم. یکی از سهروردی، دو تا هم از دیگران علاکو حال علم فلسفه و علم مجمالی داره. علم مجمالی و چیز دیگه است. اصطلاح یعنی فرق جوهری با این داره. ولی ده عین همین باشه که میشه همین دیگه. اون با این فرق جوهری داره. اون قویتر از علم متهصیلیه. علم باری تعالی به همه ممکنات قبل از خلقت علم اجمالیه این منبعی برای خودش مثل علم مجتهد به همه احنا که به سو... جواب دادن به همه سوالات که داشت پرسیده میشه علم که یک منبع جوشانی همه چیز ازش درمیه اون علم اجمالی تکبینی فلسفی اصطلاح خاصه قیل از این اصطلاحی که محل این علم جمالی علم جمالی اعتباری و از اف از عدم تفسیبی این خیلی جشد تصدیح و خیلی هم اصلا تصدیح نکردم قائل نیستم به اینکه فلسفه علم عدم داره چون یا ندیدن یا نمیدونن چون ملازمه نیست خیلی از اصولیین فلسفه یا نخوندن یا اعتقاد ندارم یا حتی مطارم ندارم این از افیت یک ادعایی نیاز به اثبات داره که علم اجمالی از علم تفصیلی ضعیفتره این ضعفش به خاطر چیه؟ و این بحثی که داریم مطرح می تقریب میشه نظریه آغازی عراقی در اینکه علم اجمالی نفسش فرق با علم نه نمعرومش طبیه این گوله زعف؟ همونو میخوام بگم یک اثری باید دفته بشه که این سبر ای فکری برایش برش بشه و این امانه میتونی به از زعفیت بشه مهماست شما که علم تفسیری پیدا کنه به نجاست این لباس یا علم ارمالی پیدا کنه به نجاست عهد ایمان. این زعف یا زعفی که داریم بگیم باید اصطلاحی باشه و ازا بی سمت در توزمات قبلی یعنی مال سالهای قبل که تکثیر شده اما این هم در اینا رو در متعلق علم اجمالی اختلاف متعلقش آیا واقع اجاست واقعیه یا جامعه بین دو طرفه یا فرد مردده یا عمر دیگهی دختر دفالعالم الاعوان بعضی یا قائلا به اینکه مطلقه علمی این واقع قائلی یا به میگه فرد مردد بین این دوتا بعضی یا قائلا به جامع بعد از تحقیق همه این نظریات ما به هیچ نتیجه ای یعنی ما قایل به یکی از اینها بشیم و دو تا دیگر ردش کنیم و سه تا دیگر ردش کنیم ای نمیتونیم بگیریم یعنی جزمی برای ما حاصل نمیشه که این به چه تعلق گرفته به واقع کدوم واقع ؟ واقع اولی واقعه سانمی واقع واقعیه اینها در گفتنش نداره ولی واقعی یکی فکری اصولی نداره یا فرد ما بعدن یه مناقشه کنیم که فرق مورد در داره نووجود داره نسبت به هم همینطور اشکالی وارد بشه و جوابی داده بشه علاقل تبدیل در دومه سابق گفتیم که متعلقه مجموعی یکی از اینها باید باشه بعد در قسمت باب اشتغال رسائل اونجا یه مطلبی گفتیم که این از عافیت نیاز به دلیل و از یعنی چه؟ بیماری ضعیف‌تر به چه معناست؟ حالا اون میخوام اینجا بگم. که این از عافیت به چه معناست؟ که الان صفحه 83 همین رو نوشتیم که فرق بین دو علم تفصیلی و اجمالی یک فرق جوهریه فرق سودی فرق جوهر یعنی چی؟ یعنی سمره عملی برش مطلب فرد فرق جوهر یعنی سمره عملی برش مطلب یعنی اگر کسی علم تفصیلی داشته باشه یک حکم برش ثابته اگر علم اجمالی داشته باشه یه حکم دیگه برش ثابت این دوتا یک چیز نیستن شبیه قول آغازی عرامدهیه یه موقع ما زید رو از نزدیک داریم میبینیم که معلوم زیده یه موقع در دیویس متری داریم میبینیم یک شبهیه معلوم زیده یا عمر یا خالد یا همانه شبیه علم اجمالین رو تشبیه میکنه به دیدن از دور و شبه و امثال این هم مثل آینه که خدورت داره و بازتابی نداره این نظریه بهتر از نظریه مشهور از این جهت. که بیان نکرده. نه بیان نکرد سمره عملی قائل نیست برشت و اون تصدبتی که در اصول داره در فقه اعمال نکرده یا نداشته قائل به اینکه فرق داره حقیقت علم فرد داره ولی مشبور میگن نه حقیقت علم فرد نداره معلومش فرد داره معلوم در علم تفسیلی متعینه معلوم در علم جمالی نامتعینه خب این همه میدونن یعنی مخدرات هم میدونن این رو که م... این متعلق این متعینه متعلق و نامتعینه یه نیست مشروع قاید بشن لذا هر فاقا زیاد دقیقه که علم حقیقت این فرق داره. و یه واقعیتی ما تا پیش نرفته اگه پیش میره خیلی مفید بود حالا نکته که میخوام بگم و خیلی مهمه و در موارد علم اجمالی هست در فروات فقهی که علم اجمالی هست فقه ها هم فتاواشون تحت همین نظریه هست و سرش معلوم میشه که چرا در موارد علم اجمالی فقه ها اونطور فتقا میدن در موارد به تفسیلی اینطوری فتقا میدن رو میخوام بگم که سر هم در همین صفحه نوشتیم علم اجمالی در یک سطح آیه ای از آیهاتون سوگه و تفرید میکنه نظریه آغازی عراقی رو و حلال خیلی از فروات فقیر و اشتالاتی که در اون فروات پیش میاد و مبانی خیلی از فروعات مقصه در علم اجمالی هم به دست میاد و اون اینکه علم اجمالی منجز حکم مترتبه بر عنوان نزاد همون چیزی که از اول سال داریم میگیم و اون خاطر میگیم بحثهای احصایی به هم دوخته است اگر کسی یک جلسه رو نباشه از دستش میپره به عد نامناسبتی طلبها قیبت میکند، و نمیام. سرم درد میکرد و زنم وضع هم داشته و و امثال اینها دلیل نمیشه الامور المنتظمه یفسد و حل خلاف در محضورگانه یعنی سلسله های منظم یک نش نباشه فاسده الان تسبیح ها اگه 101 نباشه هم نمیتونه به ذکر بگی ولی اگه بدون این تا هست میتونه ذکر بگی باشه ولی اگه بدون این ناقصه نمیشه به درست نمیکنه تصفیح... تسبیحی نقضی 9 تا داره به درست نمیخون چون ما نمیم یه دونش الامور امور منتظمه یک سه تو یک روزم غیبت نمید بشه به چه مجوزی غیبت میکنم قلب ها محقق در شرح حال خودش نوشته سینزه سال در آخوند قراصانی رفته با اینکه هیچ نیازی به این درس نداره عقل فعالی محقق خراسانی که اصلا فلسفه بلد نیست این فیلسوفه حسوبی فرقیه به مراتب از آخونده خراسانی بالاتره سینزه سال من از آلیه و در 13 سال میگه من یک روز رای اونم با خاطر چشم درد شدیدی که به استرار رسیده ولی الان ما چقدر اول سال میانه امضا میگیرم و میرم تاکسی دارن، داری دارن، چیزای داری دیگه دارن و فروش دارم. آخر سال میان باز امزا میگن یه دو سریز روز شد باید باید بیانتا اون عنوان ثابت بشه لذا اگه حلقاتی بوت بشه انسان متوجه نمیشه سعیتون بر نظم باشه خود نظم اثر تکوینی داره آدمایی که منظم میرن چون بیرین ماها ها ها که نداریم ولی این الله این ربک و کلا خدا خودش میدونه یه طلبه منظمه یه که منظم نیست اون منظم به درد دین میخوره نه نا منظم خیبت نباشه هر درسی میخاید برید منظم برید نه یکه درس ما نه هر درسی میرید هر کهر هر خلاف هم هستید منظم نظم خودش خیلی خوب اگه یک روز نباشه بعدا روز بعدش که میان متحسی میشن این بحثا واره. و بنابرای یه موانی خیلی میانبر دفته بشه میانباره که به ذهن مرماقه تحفیزی هم نرسیده ولی اون دیرهای که در گروعات علمه اجمالی هست اگر ایشون میدونست این احتیاط نمیکرد. میبینید در نوع فتح میاد احتیاط میکنه چون یه سری هست معلوم نیست این سر چیه چرا احتیاط میکنن از ایشون بپرسی چرا احتیاط کردیه میگه آی ناینی احتیاط کرده ناینی چرا احتیاط کرده بنابراین یک گیری در مسئله هست دیگه اون گیر همینه گیر همینه که حرف آقا جا افتاده قائل شده به اینکه حقیقت علم فرق داره حقیقت علم فرق داره سمرش کجاست سمرش اینه که علم اجمالی منجز خصوص حکم مترتب بر عنوان مثلا اگر ما فایده شدیم که قصبیت مانعیت واقعی داره که فقها هم قائلن دیگه قصبیت مانعیت واقعی داره این در صورتی که علم تفصیلی به قصبیت باشه و یکر علم مجمالی به قصدیت داریم مانیت خود مصنف این صفحه که انوز مراجعه کنید همین مطلب رو در توجیحات میاره مانعیت واقعیه داریم یعنی علاقه در تبدیلید. اگر کسی علم تفصیلی داشته باشه به اینجا اینجا بسته. خب نمیتون نمازمان ولی اگر حیل مجمالی داره بین این و جایی دیگه یا این قصد یا اون یکی قصدیه دیگه مانعیت ثابت نیست به خاطر اینکه به انوانه صفحه 82 از همین کتاب های کنگره کنگل علم تفسیری کل منطقه شغه موجوه هم دلحور دن یقال و الاجتناب و ماول مکنه به خصوصه باولند یعنی شبیه همین حضی که داری میزنید قابل احترام دو خدمت مسند داره علم اجمالی ضعیفه ضعیفه یعنی چی یعنی منتج حکم مترتب بر ذات نمیتونه باشه بعد عنوان که خب دیگه بچه‌ها اونطور میخوان در همین بحث이야 یعنی یعنی دیگر اعناب واقعیه موانع واقعیه شروط واقعیه با علم اجمالی احراز نمیشه مانع واقعی با علم اجمالی احراز نمیشه که مانع واقعی دیگه مانع ذاتیه دستیت مانعیت ذاتیه داره با علم اجمالی منصف نمیشه برمانه بر اناویم باشه فقط ببین احد و همان از نه ذات دو طرف ذات که نجس احده عنوان نجسه لذا چرا دوتا ذات رو کنار بذاریم چرا مشهور دو ذات رو کنار بذارم مگه عنوان نجس نیست عنوان بذار کنار عنوان احده ما نجسه عنوان اهدهما ما بره کنار چرا تی به ذات داره و اگر شما ده سالم هم بخونید اگه به این نتیجه نرسید در فتحه های سراب دارید نمیشه فتحه داد و اگه فرصتی باشه تا شنبه من چندین مورد پیدا کنم که فوقه ها سراب دارم نزه احتیاط کردن احتیاط سرش بسیه سرش که یه چیزی هست یه چیزه که اینجا هست معلوم معلومه چیه اون چیز همینه که علم اجمالی منعجزه خصوص حکم مترتب بر انوانه نه زاد وقتی به زباد نداره ولی علم تفسیری منجز هر دو قسم از احکامه احکام مترتب بر زاد و احکام مترتب بر انامی احدهما و هما نجسه میره کنان نه نذاد مشکول میان میذارن دو طرف میگن بذارید کنار یعنی زاد رو بذاشتن کنار با این که از حرمت ذات نیست چرا رب به ذات یک مثال خیلی واضح هم باز هست مقتلا به هم نتون بگم بعضی از موارد میگن میان میگن ما خمسین سال خمسین نداشتیم و راقبالی بودیم به دین که ما مشهور و نداشتیم فقها قائل به مصالحه صالحه بعد اشکال میشه که برای چی مصالحه میکنیم که خمس نداده چون علم اجمالیه چون علم اجمالی داره علم تفصیلی اگه داشت خمس همه باید میداد. مفروض علم اجمالیه چون علم اجمالیه ترخیص داره ترخیصش به چیه به مصالحه بخواد فقیه از این پنجاه دارتم من بگیره بخواد پنجاه میلیون بگیره علم اجمالی داره که یک قسمتی از مالش مخمز نیست و خمس به اگر علم تفسیلی داشت به این که به این چیزهای گلان داره خمس تعلق گرفته و نداره، باید همه را بده دیگه مصالحه معنا نداره ولی چرا مصالحه میکنن؟ به خاطر علم اجمالی کسی میتونه دن؟ بله خمس آره یقین دارن علم تفسیلی دارن به این که خمس ندادن ولی آیا یک سال موند و تعلق گرفت و ندادن؟ اینا رو نمیدونه از خمس نداده علم وجدانیه ولی آیا واجب هم شد برش نده؟ علمش مالیده ازام رو صالحه میکنن یا بعضی از موارد ما رو دعوت میکنن به سوچرانی مهمونی عروسی امثال اینا که پر از شبهات محرمات دارن چه میگن برو بخور ولی خودت خمسشو بده ما چرا بدیم اون خمس نداده است. به خاطر علم اجمالی چون علم اجمالی داریم ما که یقین نداریم میگه داره میگه حرام علم اجمالی داریم و صدها مسئله دیگه که یک ترخیصی درش هست اون ترخیص به خاطر چیه به خاطر علم اجمالی به انوان تعلق میگیره نه به واقع نه به جامعه نه به مردد نه چیزهای دیگه که بافتن به انوان تعلق میگیره و از خایه های در خیلی از کلمات این فرصت که باشه آدم نگاه بکنه ببینی حتی شیخ مفیدم یک تفسیل اینطوری در المغنعه داره یعنی تفسیل بین انوان و ذات داره تا به این تعبیر نیست ما تحت این دوتا تعبیر داریم میگیم. علم اجمالی حقیقتا با علم تفسیری فرق داره نه در معلومش بلکه خود علم به خاطر همین گفتیم ضعیف زعفش در خودا ظاهر میشه آقا علم اجمالی فقط منتجز انوانه و چون منتجز انوانه چی میشه؟ جز احکام متغیر میشه ما در موارد علم اجمالی احکام ثابت نداریم به خاطر که میشه به عناوین دیگه، وقتی به عناوین باشه، جز متغیرات حساب میشه. و تمام آثار متغیرات برش متعلّقه. یکی از مسائل که باز مشهور به همین نظریه قائله. مشهور به همین نظریه قائلا که علم اجمالی به علمام تعلق بگیه، متغیر میشه. همین ما علم اجمالی داریم که آیا خمس به ذمه ما تعلق میگیره یا به مال ما تعلق میگیره واقعا این داریم ما یقین نداریم ما یقین نداریم خمص به این تعلق گرفته یا به ذمه من تعلق گرفته به خاطر بودن این مال چون علم اجمالی داریم مشهور فقها قائل به ترخیص هم. در چی؟ در مداوره دستگردان می کنی. دستگردانی که الان هست مرحوم کوی قائل ما سرین قائلن و از میگن آقا این ترخیص از کجا اومده یکی از اونهایی که میگه خود منم این ترخیص از کجا اومده به خاطر علم اجمالیه علم اجمالیه به چیه به این آیا خمس به ذمه من تعلق گرفته یا به مال من تعلق گرفته. اگر به ذمه من تعلق گرفته که تو ذمه هست باید بدم دستگردان نمید. اگر به این تعلق گرفته خب باید از عین بدیم چرا دستگردان میکنه چرا پول دیگه میاری بسا به این ماشین تعلق گرفته باید بخروش هم بدن دیگه دستگردان معنا نداره. پس این دستگردان خاطر چیه؟ به خاطر علم اجمالی به اصله که یا به ذمه تعلق میگیره که بعضی از روایات داره یا به مال تعلق میگیره که بعضی از روایات دیگه داره و صدها نزیر از نظاهر فقهی بگردید پیدا کنید و تا شنده وقت باشه فرصت باشه چند از غربه من براتون میارم که فقها ها احتیاط دارن احتیاطشون همینه ملخص کلان تو این جلسه اینه که آغازی عراقی قائل بینه که فرق بین علم اجمالی و تفصیلی جوهریه برخلاف مشروع و چون جوهری ضعیفتره و ضعفش کجا ظاهر میشه؟ در تعلقش به عناوین فقط و در اطراف شبهه علم اجمالی ما زواصو نمیدونیم مرجعیت کنیم برطرف. دیگه موقع از هر دو ذات اجتناب کن، در وقتی به ذات نداره. نهایت چیزی که در علم اجمالی تنجس پیدا میکنه عنوان اهدهما ما یا عهد هاست. و هیچ ارتباطی به ذات نداره. همین تحقیقایی که همین اینطوری آره، این میکنه نه چون من نتونستم تشخیص بدم که خانس به چی تعلق میگیره، قائل به جواز مداوره شدن دستگردان. و این معنا نداره مداوره علان به خاطر علمانه. علمانه یعنی هر ترخیصی شما دیدید به خاطر علمان نه پس که مداوره یه نوع ترخیص هست یا نیست نره امس به دهکار پنجام بلیون هماره باید جا بیاره بده بگی من ماهی ست تومان میخوام بدم اینو قبول میکنن برای چی قبول میکنن به خواهد این که ما نمیدونیم به کدومش تعلق گرفته به زمه تعلق گرفته باشه که تو زمه شد چون مدابره یعنی چی؟ از نظر فقی مداوره یعنی خمس متعلق به ای منتقل بشه به زمه مدابره یعنی حالا یه مرز که فکر کنه ایتا باز توضیح بدم این مثل اینی طول میکشن طول میکشه ولی ملخصش تو زه بمونه علم اجمالی غیر علمان رو منسجز نمی کن. یاد داشت‌ها واقعاً خیلی که که در کارنام همین مثل هم هیچ انواری ما نده دو تا دادرس یا این شد من این مونجرج نمیفهمم مثلا هم نشاط بزنیم ماده 7 قضیه ما نه تقصیر فنی اگه حالا توضیح میدم خیلی ببین جوز مبانی خیلی سخته عجبا نکنید شاید 5 6 جلسه این توضیح بده میادم داره ما دوره قبل نگفتیم تو یک سطح اشاره کردم به خاطر که خیلی نمیتونستم بپذیرم تو یک سطح به صورت اشاره نوشته بودم بعد نوشته بودم که بعدا وطبر از که توفیق نشد تو اون دوره نشد ولی این دور داریم می یم. یه من